به خوشنودی او رامزدا خداوند جان و خرد و به خوشنودی و روان یا همان روان جهان روان جهان زنده یا بخوایم بگیم هر آن چی که زنده است تو زندگی را خوش است و با درود بر روان و فرهبر اشو زرتشت سپنتامان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 سه روز پیشم که دوشنبه بود روز مهر بود از ماه مهر و جشن مهرگان که بیگمان همه آشرا هستید و با کمی دیر کرد در اینجا به همه شاد باش میگم و یادواری هم میکنم که مهر یعنی پیوند و پیمان و پشت که خود باشه عشق هم از ریشه همون عشا یا عشم گرد که امروز می‌خوایم در موردش گفته کنیم هفته پیش از دین یا دعنه و مانا و مفهوم اون گفتیم که دین چیست خرد آگاه هست و وجدان هست و چشم بینا یا بینش درون و دین خوب و به اونی هستش که دارنده خودش رو خوب و به و زیبا زیباسیرت بکنه. آزر آز کردیم از پایه های دین و جهان بینی ضرد داشتی یا مدیاشنا گفتن و از همشهاسپندان یا اصول پایه های هستی پایه های دین زرکشتی و اولیش رو گفتیم سپنتا مینو یا اون گوهر و ذات و صفت و آفرینندگی احرام ازده که از اون، از هن هست آفرینندگی به طور کلی آفرینش شکل میگیره که ما بهش سپمتا سپنتا مینو مینوی آفریننده و پیش برد سپس از وہومن گفتیم وہومنہ یا بہمن خودمون که یعنی اندیشه نیک و سازنده و اینکه انسان به یاری وہومنش هست که به خودشناسی جهان شناسی و سرانجام خدا شناسی میتونه دست پیدا کنه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 سپنتامینو در برابر پنگرامینو و اینکه این کرمگرامینوس واژه است که تبدیل شده به اهریمن و اینکه اهریمن نه, نه یک موجود است یک موجود دراگونی است و نه شاه خود میدارد و که اندیشه های بد و مخرب و ویرانگر هستند که انگرمه ی هستند هستن یا اهریمنی هستن و اینکه انسان هست که میتونه با گزینش نادرست در واقع اهریمنی اندیشه و گفتار و کردار بشه و یا وارونه سپنتا مانی بشه به سوی سپنتا مانی بره یعنی اندیشه هاش اندیشه های خوب و سازنده و پیش فرنده بشه خب امروز می‌رسیم به عشا یا آشا یا آرتا و عرطا. یه بار دیگه این روزی رو بدم که این دو تا یکی هم اون ره و ته در آرتا عرطه تبدیل شده به شه یا عشر که از این بعدم من همون عشا رو فقط به کار می‌بارم که دیگه آشناتر باشه آرتا هم به ویژه برای این گفتم که این واجه راستی که ما امروز میدیم دقیقاً از همون رتا که ریشه بسرا عوستاویش باشه میاد. اینجوری بگم که اگه بخواییم همه دین زردوشی رو یک کلمه کوتاه کنیم و یا تنها یک پایه اصلی بخوایم براش در نظر بگیریم میتونیم بگیم همینش هست. اه که ساده ترین و از نظر واجعی هم ترین معلیش راستی هست به خاطر همین است هم که که مهمترین و پایه‌ای ترین نماز زرد هم که عشم وحو باشه همونی که می‌گیم عشم وحو وحیشتم هستی اوشتا هستی یعنی عشا یا عشایی عشم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 و رضایت و خوشنوبی و خوشبختی برای پس اگر بخوایم ببینیم خوبی چیه نیکی چیه بر اساس همین نیایش که میگه بهترین خوبی اشایی است پس باید عشای راستی رو بهتر بفهمیم و خودمون رو باهاش هماهنگ کنیم یا راست و درست بشیم کسی که با عشا خودش رو همه میکنه، بهش میگن عشوان یا عشواند یعنی دارای عشا و کسی که به قول معروف به حد نهایتش برسه کسی که عشوان است، یعنی خود راستی میشه خود درستی میشه که کوتاه شدهش رو میگن عشو یعنی همونی که ما در پیش نام زرتشت مهربان میگذاریم و بهش میگیم که عشو زرتشت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 بنابراین وارون یا ضد راستکار چی میشه؟ دروغ کار یا ورستایی وند که پس راستی در برابر دروغ و راستکار در برابر دروغ کار این واژه اشها توی گاته های داشت بیش از سال هشتاد بار به کار رفته بیشتر این واژه کلیدی هست این واژه ها رو بهش میگن واژه های کلیدی اینا که ما بنا به احساس بندان میشناسیم و مترجمین هم به شکل های گوناگونی اون رو اونو برگردون کردن. اون کردن ولی اون اون چه در مورد پذیرش هست و به کار میره به از خود راستی اینها هست نظم یا حنجار یا سامان هستی ریتم کیهانی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 به پیش میده و بر اساس این قانون و نظم هست که همه چیز روی میده بگذارید چند تا نمونه بیارم تا این قانون مندی رو بهتر بشنست ما در هر سطحی از هستی که بشنستیم نگاه بکنیم میتونیم اشار رو ببینیم که در کار هست و ما هم با اندیشه و و باید هر چه که بیشتر میتونیم رو بشناسیم تا هم ازش سر بیاریم و هم برای بهتر کردن هرچه بهتر کردن زندگی خودمون زندگی فردیمون و اجتماعیمون خودمون رو باش هماهنگ کنیم. اگر از بیاییم از دنیای بزرگ که رو ماروشش رو کنیم دنیای بیرون از خودمون، برای سر خودمون، از آسمون و کشتیان ها و سپه رو بیاییم در طبیعت پیرامونمون نگاه کنیم. می بگیم که هر آنچه که سبب به وجود آمدن برای نمونه از ب... از ستاره ها و سیاره ها رو به وجود نیاره از منی بره و قانون مثل قانون جاذبه یا همون کشش رانش عمال و و یا کنش و واکنش حرکت و جا تغییر شکل وابستگی و خلاصه هر چیزی که ما در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 کلیه و کبد و دوزین ها در کار درست خودشون باشن در هماهنگی با هم باشن و در نظم و سامان و در اندازه های خودشون باشن و مشکفش کنون از اون حد و اندازه خودشون نه کمتر بشن و نه بیشتر ما هم چی هستیم؟ تن درست است. و عشای بدن ما هم برقرار اکنون اگر این اندام ها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 در واقع تنمون رو عشایی کنیم و سالم کنیم روان هم همین داستان رو داره اون خوراک لوانیمون رو مگه درست بهش و آرامش در زندگی برقرار باشه و نیکمنشی و نرخوری و مهورزی و, و از اون سو البته بینیازی و دلیلی و هران که برای روانه درست نیاز است داشته باشیم پس بنابراین روانمون هم عشایی است و خوشنود و شادمان هستیم. البته تنه روان هم میدونیم که با هم در پیوند راست و درست مستقیم هستن. بنابراین اگه یکی درست، تباشه دیگری هم درست نیست. حالا اگر وارونم، یعنی دروغ رو به خودمون راه بیدیم و هم هوای ناپاک بشپدین، خوراک و بد برد بشپدین، این دور و دم و داروهای زیانبار و رو به بدر خودمون برسونیم و یا کمتر یا بیشتر از اندازه بخوابیم تنبلی کنیم کاری کنیم از روی دیگر روان خودمون رو به فروزه های خشم و کینه و رشک و اصادت و ترس و زیاده خواهی مانند اینها آرایش بدیم اون وقت که عشای تن روانمون رو شکستیم بیمار میشیم بمگین میشیم افساده میشیم ناامید میشیم و زندگی ترخ و سیاه میشه پس این رو بهش میگیم اشای تن عشای روان و با یه تعریف دیگه اگه همه پس اندام های تن و روان در جای درست و شایستی خودشون باشه و کار و وظیفه خودشون باشن به درستی انجام بدن و از اندازه های درست خودشون نزنند بیرون قانونمندی و نظم خوب و سازنده هم برقرار میشه برقرار میمونه و تنه رو سالم میشه حالا همه قانونمندی رو بگیریم از انسان بگیریم تو جامعه انسان و بخش های رو میتونیم بگیم عشای خانواده باید برقرار بشه عشا در سیستم کشورداری از عشا در سیستم اداری و اینها در اینجا هم میتونیم همین تعریفو ها بکنیم هاج در یک جامعه هر کسی بر اساس شایستگی هاش در جای درست و شایسته خودش قرار بگیر. و البته این این این برای همه وجود داشته باشه که بتونن در جای درست و شایسته خودشون قرار بگیرن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 کند و کابی که در زندگی پستی کرد به دو راز بزرگ در جهان هستی پی بود یکی اینکه هیچ، هیچ باشنده ای، هیچ باشندهی جان، جاندار هیچ جانداری هیچ آنچه که هست هیچ چیزی جلان مستقل نیست از چیزهای دیگر و همه چیز از کوچکترین ذره‌ها ها و ریزه های نادیدنی گرفته تا کردشان های بزرگ که حیام داره به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 پس به خاطر هروسی بزرگ در شاهنامه کلان خودش چی گفته توانا بود که دانا بود از دانش دل پیر برنا بود بود یار با ایشان فقط منظورشون دانش‌های روز دانش پزشکی و مهندسی و مانند اونها احتمالا نبوده برد که اون دانش والاتر دانشی که زامن توانایی و برنایی یا جوانی هست مذهبشون بوده و همون عشاق دانش بزرگ بوده از اشای خانواده گفتم میخوام یک کوچک اینجا بگم در مورد خانواده که البته وقتی میگیم خانواده میشه گفتش که در در بین در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 و تفاهم به معنای همان به اندازه باید وجود داشته باشد و میگه که این سخنان را به شما میگویم ای نو و ای تازه‌دامانان پندم را با اندیشه بشنوید و به یاد بسورید همواره با منش نیک زندگی کنید و هر یک از شما در راستی از دیگری پیشی در راستی از دیگری پیش گیرید تا زندگی و خانمان خوب برخوردار گردید گردید.ه مرددان و عزن ای این به بدانید که در این جهان دروغ فریبنده است از آن بک و آن را مگسترانید و این بدانید، که آن خوشی که از تباهی و تیرکی راستی به دست داید ماگه اندوه هست و دروندانی که دروندان گفتن به همون دروکاران دروندانی که راستی را تباه می سازند زندگانی مینوی خیش را نابود می کنند. این هم به هر حال پنده پوچکی در رابطه با زندگی خانوادگی که امیدواریم که همه این رو آویزه گوش داشته باشیم تا زندگی هامون خوب باشد آه پس اگه به کوتاهی بخوام بگیم عشایی یعنی جاستی و ضدش هم یعنی دروغ و این پاگه دین بهی زرتشتیزی راستی یعنی چی یعنی حقیقت یعنی واقعیت حالا این،, این حقیقت و واقعیت هم یکیست ما اینها را از جدا نکنیم راستی در اندیشه و گفتار و کردار یعنی یعنی چی یعنی هر این که در فکرت هست در اندیشت هست اگه به گفتار و کردار میاد باید همون باشه. یعنی که آدم یه چیزی رو فکر میکنه ولی یه چیز دیگر میگه خلافش رو میگه یا انجام میده در واقع رو راست نیست صادق نیست صداقت نداره کسی که حالا اونم اگه بخوایم وارد روانشناسیش بشیم داستان چرا علی افتاقت میافته چرا کسی از خودش اگه آغاز بکنه با خودش دستگم صادق نیست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 برای چه مدتی چی کسانی این وسط از این دروغ به اصطلاح مسترتی صدمه بیبینن و صدمه بکنن برابرین دروغ دروغن یه تعریف دیگه هم میتونم برای دروغ بگم که این, این واژه دروغ این در بسیل اون در ده و آغازش میتونیم بگیم همونیه که ما در واژه دریدن داریم یعنی بریدن و پاره کردن ببینید هران که انسان رو از اون خیشتن خودش از اون بون و درون و ریشه خودش این بن که من میگم یعنی اون ذاتمون گوهرمون که خداییست مزداییست عشاییست ما از درون خدا رو درون خودمون داریم اشا رو درون خودمون داریم هرانچه که من رو از اینها ببرد و جدا کند به زبان دروغ است هرانچه که من رو از خدای خودم ببره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 طبیعت جدا کنه من از طبیعت ببره من نفهمم که با آخشیچ ها و با طبیعتم که اونها همه هستند در واقع به هم پیوند داریم دروغه پس منابراین این بریدن ها و پاری کردن ها دروغ است به گونه این بودن و پیمانه نگهده نداشتن به قول ما اینا پیش درآمده دروغه پس دروغ هرانچه است که نیروهای درون و برون رو از هم ببر رو جدا کنه با عشا همخانی و همانگی نداشته باشه به گوهر انسان و به گوهر زندگی به طور کلی آسیب برسونه و مایه و نگهدارنده آزار جان و ترس و چینه باشه پوسیدگی و تباهی بیاره و سرانجام میتونیم بگیم که بدی رو نیکی نشون بده که اینه رو مهنشون بده زشتی رو زیبانشون بده و به خردی رو خرد جربه بده یا فریب بده در و ریا کنه اینا از همه از مظاهر دروخ هسته بنابراین به عنوان ذرتشتی به عنوان بهدین یا به عنوان انسان انسانی که به ریشه مزدایی و معنوی خودش آگاه میشه خود به خود باید اگه شناخت درست پیدا کنه به سوی عشا بره و از دروغ دوری کنه من از زامانگر عدمی گرامی میخوام که اگر شده نیست یک موسیقی پخش بشه تا من هم همزمان بتونم پرسش شای که اومده نگاهی بکنم و یادداشت کنم های امکان داره جونم؟ بخوام تو زاین دیوین سال که بر تو باقت مهرگان نیفال چو این روز خورم فراخانه ماست دیز زباستان برایت به جا دروبی به ایران و ایرانیان خجسته بابت بر شماداد دروبی بینران و ایرانیان خجسته بابت بر شما در این روز فرخنده گردن فرار شد از نهر تو مهرگان سرفراز. فر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 دوباره و سپاس از آهنگ زیبا خب در خدمت شما و امروز از اشاق و راستی درستی سخن گفتیم و از وارون اون دروف خب میتونیم از این به بعد بپردازیم به, بفرد از این به پرسش هایی که آمده تا زمان بیشتری هم داشته باشیم که به پرسش های دوستان پاسخگویی داده باشیم نخواست از اینجا آغاز کنم که بار پیش یک پرسش بود که من گفتم نمی و پرسش از اینجا بود که آیا, نظر آیا درست است که در زمان گونه خودش و پرسشگر اینجوری پرسیده بودن که نماز یا نیایش در سه بار بوده در روز و بعد پنج بار در روز شده که من خوب اونها گفتم من نمیدانم و هنوز هم میتونم بگم که نمیدانم اما انگام که چشم ها تا زمان برسه و در خدمتون باشم از جمره دوستان یک نواری رو از گفته های، شاژوان مو به پش پخش میکردن که درون در پاسخ پرسشکر ایشون گفتن که چنین بوده و سه وعده بوده با اینها که گفتن که از خودشون گفتن که سه وعده صبح و نهار و شام که هر رو مخفیه میکنم که وقتی میکنیم که خود عجوز در توش خب چنین چیزی در گارتها ها به اون معنی شاید نباشه ولی در بخش‌های دیگر عوستا که به هر حال از این فرهنگ آمده حتما بوده که ایشون خوب بهتر از من میدونن بنابراین دستکن باسخ رو از شارجمان مولد شهزادی دریافت کردیم که ظاهرن چنین بوده اما همزمان هم ایشون در ادامه سخنانشون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 کارو کوشش و خدمت به مردمان و خدمت به زندگیو هستیست بنابراین نباید این رو به گونه‌ای بهانه‌ای بکنیم برای این که دم بدن هی کارو کوشش روزانه رو بشکنیم و کاش که کاش که نماز و نیایش ما راستین باشد یعنی به راستی وقتی که به نماز درمیه اون در واقع پیام خوب و انسانسازی که در اینا هست براستی بشندیم و خودمون رو در ادامه کارمون قریه تر بکنیم. نه اینکه که بحانهی باشه که به خود مرفع زیر کار و کوشش شانه خالی بکنیم. نباید این باشد. خب پرسش که عنوان شده از جمعه این هاست. آیا برای زرد تشتی شدن حتما باید سرد پوش شد من فکر می که حالا شد به اندازه کافی این گفته نشده ولی حالا میشه شه باز یه بار دیگه ما بگیم که ببینید زرتشتی شدن یا زرد بودن این یک فرایند، یک یک راه هست یک یک روند، یعنی چی؟ یعنی که برای زرد بودن باید تونست که فهمید که ز... یعنی چی زرد بودن؟ این همین که ما داریم در اون به سخنگیم مهمترینش همین هاست، داری راه دور نریم، همین راستی و درستی، خب اگه ما بتونیم به راستی به سوی این سپنتامن بودن که میگم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 در واقع اول به یک صداقت راستی و رو راستی با خودمون برسیم تا درون خودمون رو پاکیزه بکنیم وقتی که درونمون پاک و پاکیزه شد خود به خود رو به بیرون هم میاد و به قول معروف واکنش پیدا میکنه رو به بیرون خب این روش میگیم داشتی بودن زرداشتی بودن فقط به معنای این که یک آین و یک به قول معروف سنتی برای انجام بشه و حالا صدر رو کنیم یا کشتی ببندیم و ولی این راه رو ندیم. پس از اون هم بیایم و دوباره به گونه راه غیرعشایی رو در زندگیمون بریم خب این زهدوشتی بودن نیست بنابراین اون آین هم ارزشی ندارد خب این آین یک سنت هست یک چیزی که از به گفته ای از زمان خود عشو هم وجود داشت چرا برای کسایی که نمیدونند باز تکرار بکنیم که ظاهران پدران ما، ملران ما خب در میان جامعه خودشون، در میان خودشون یک آینهایی مثل همچین داشتند برای جوانانشون، فرزندانشون که به سن رسیدگی و بلوغ می رسیدن برای که به گونهی به زندگی بزرگترها وارد بشن کمر نیوستند، اینو بشه چرا در فرهنگ ما آمده کمر کوشش بستن کمر حمد بستن کمر پیمان بستن کمر پذیرش مسئولیت بستن خب اشروزرتاش اینکامی که دعینای خودش رو آورد و به قول معروف ازش یک, یک میشه خود سیستم ساخته شد خب این آین رو که در بین در بین مردمی که در زندگی بی وجود داشت خب اینو به شکل یک آین تبدیلش دین هم در و پس از اون هم خب ادامه پیدا کرد بنابراین پس پرسش کوتاه پاسخ این است که حتما نه حتما نباید سدر پوشی. پوشی خب خود انسان رو اگر بتونه به اونجا برسه و این کار رو بکنه و به راستی این کار رو بکنه و بدونه که داره چرا این کار رو میکنه خب بهش کمک میکنه که در راه خودش و در پیمانی که با در در با خودش و اهورا می بنده و سپس با جامعه‌اش بتونه در اون راه استوارتر بیسته و این بهش یک انگیزش، که انگیزش روانی میده که که بهتر در اون راه بره. و سپس فقطن حتما باید نماز روبروی آتش خواند. واصن مثل همه چیز دیگه ببینید یک اصل کلی رو ما باید اینو بدون هر جوری که هر کسی بگه این یک اصل است که در دین ما بکرونکن حج و دستور وجود نداره شایستگی وجود داره اگر ما یه چیزی رو تشکییس دادیم که شایسته است برامون و به خاطر همون برگزیدیم برای خودمون خب ازش بهره میبریم مسابقه آتش که در واقع مثاله نور باشد برای اینکه می دانیم دیگر نور رو ما به عنوان یک نماد و سمبولی از مزدار، از دانش از حقیقت همون راستی اشا و این اشا اشا و هشتا ارتی بهشت نمادش آتش است کلی بنابراین آتش و نور یک سوگ نیایش است اما اگر هم نبود کسی نمیگه که نیایش نمیشه کرد. چشمه ها رو بمند. نیایش کن. این برای درونت داره میکنه. اون نور رو درون خودت داشته باشه. روبن نور بیرون ایستادن نور زندگی خب میگم انسان رو با اون چیزایی که نمالش از پیوند تری میده. ولی خیلی وقت هست که آدم باید چشمه رو ببنده آدم باید به درون بره به قول حتما نیست چنین چیزی نه ولی اگه باشد تحصیلش بیشتر خواهد گوست دیگری گفتن اشها به دلیلی گستر به دلیل گستر به معنی های بهتر نیست اشها رو راستی و درستی معنی کنیم نه فقط راستی خب آره ببینید درستی میگم باز ببینیم که معنی نه چیه و ما چی در نظر داریم وقتی میکیم درستی درستی که مثلا در تندرستی میاد یعنی تنمون سالم باشه آره. یعنی همه سیستم درست کار کنه بعد میشه در این رابطه گفت که درستی هم هست درستی یا یعنی که به معنی کامل بودن درسته شدن همه شدن کامل شدن که البته براش ما واجبان دیگری داریم که بعدا بهش میرسیم یا همون خردات، حرومتات یا همه شدن درش هست ولی راستی و درستی گفتن خیلی هم زیباست چرا که نه؟ چش ما هم میگیم راستی و درستی جو نه. درست هم هست درست دیگری گفتن که هدف از تکرار ادیان در طول تاریخ چیست؟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 باز میگم به جهان و هستی شناسی و خدا شناسی اینجا میتونم یکتا دو چیز جش اشاره کنم یکی اینکه برای نمونه واژه خالق رو به کار بودن البته خب ما وقتی خالق با حداقت میگییم در نظر ما همون آفرینش و آفرین نندگی به نظر میاد ولی اگر به اون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 بی سر و بی تح هست از نظر ما بنابراین پیدایش هست یعنی هر شکلی به شکلی دیگری پیدایش پیدا میکنن دگرگون شود از هیچ چیز در نظر ما بوجود نمیاد این حالا از نظر خود واجه و اینکه هدف از تکرار ادیان در طور تاریخ چیست اگر ما اینجوری نگاه کنیم که پس خداوند یا به قولهشون خالقه هستی، گاه به گاه یک دین و آیین رو ایشون تأسیس می‌کنن بس بنابراین هدف ایباد از این کار داشته باشن خب اگه بخوایم ما از اون دریچه نگاه کنیم به جور دیگه باید صحبت کنیم ولی از اونجا که ان نظر ما آفریننده آفرینش اینجوری مثل انسان نیست که هر چقدر چه نفر فکر کن خب الان من بیام یه دین جلیلی باید تأسیس کنم چون مردمان از اون پیام من دور افتادند. انسان هایی هستند پیاماورانی که انسان هایی که در زمان و مکان خودشون تونستند به بشرا... شرایطی وجود داشته اون حرف خودشون و راه خودشون و برای مردم زمان خودشون به قول معروف نشان بدن و پیرو پیدا کنند و سیستمی ساخته بشه و براساس اساس اون سیستم یک دین آین جدیدی به وجود بیاد اینا هدف چی میتونه باشه؟ اگه بخوایم هدفی براش بذاریم امیدواریم که این هدف برگرداندن مردم به رای راستی و درستی باشه به اون رای که از نظر ما در بن و ذات هستی و هستی ما امسان ها و هستی وجود داره باید وجود داشته باشه آه اگر این دین هر دین آین و فرسفه و ایدروجی و بینی و هر سیستمی سیستم فکری و باوری که ساخته میشه اگر هدفش و کار کردش به سوی نیکی باشه به سوی درستی و راستی و اینها باشه خب از نظر ما هدف است و درست است و اگر چنین نباشه نه درست نیست اساس وحدت ادیان آری اگر ما گفتم اگر بر پایه این شالوده ها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 وحدت رو یگانگی رو در همه چی میبینیم ولی باز میبینیم هستن شروع وقتانه دلاله گناگون سیستم های فکری که این گونه نمیاندیشند اونها فقط یک گروه ویژه رو نگاه میکنند نه همه امسان ها رو و خب این با اون وحدت و چه وحدت اذیان باشه چه وحدت وجود باشه در نمیاد. و سرانجام چیزی که نوشتند عبارت خداوند خداوند نورالیتری نور است در نظر من چه مفهومی تاند داشته باشد خب اصولا فلسفی نور یا به گفته فلسفی اشراق خب فلسفی است که نگاهش نگاه به نور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 حالا آتش جایگاه خود رو داره و به بیجه نور آتش رو و نور رو به عنوان سوگ نماز و نیایش برای اینکه بتونیم اون منبع اصدیر نور رو یا خداوند رو در نظر بگیریم خب در اینجا نشون داده میشه عجیزه بدین من پرس اشاره بتونم دنبال کنم میگویند که آیا این درست است که تا به قدرت رسیدن اردشیر بابکان آهین ازرتوشت در سراسر ایران رواج داشت و به عنوان دین معرفی نشده بود دین ازرتوشتی به مفهوم امروز آن که از دین هست از چه زمانی را برای کرده و بنیان گذار و یا بانیان مفهوم دین ازرتوشت چه قسان یا چه از خود است از یه نگاه ببینید وقتی که ما گفتیم که دین یا دعناب در زمان از گفته خودش زرتشت زرتشته خب درگاهتاش هم وجود باشته بنابراین ایش که بنیانگذار دعنای زرتشتی بهدینی خودش رو زرتشت بودن و به زمان بسیاری هم پس از ایشون به هر حال حالا از فرزندانش یا نزدیکترین کسانش سازمان سازمانکی داشتند و در واقع این دین از اونجا به وجود ما و ادامه بده کرد اما چیزی که می شود گفت این است که در هیچ زمانی تا پیش از زمان‌هایی که دیگر آمد به دقایقی که در پای باد پیشم عنوان کردم به ویژه در زمان ساسانیان در پایانش هیچ وقت اولا دین زرتشتی میشه گفت که دین بیشترین و دین مردمی و گاهی هم بعضی‌ها میگن دین دین پادشاهی اگه اسمش رو بذاریم بود و دین مردمی دین های دیگر بود هم دین های گوناگونی بودن اگه اسمش رو دین بذاریم و به حال ها سیستم‌های فکری اسمش رو بذاریم از مهرگرایی تا اونی که به نام زروانی میگن تا بعد که مانی آمد و اون دین خودش رو گذاشت مزدک خب مزدکی دین نبود یک جنبش بود و و و خب چیزهای دیگری هم وجود داشت و پیش از اینکه یک سری تحولات در جامعه ایران رخ بده و دلیل یکی از دلایل استیجام پیدایش مسیحیت رومی بود در واقع در ایران هیچ کس به دین کسی کاری نداشت یا بخواد دین رو به زور به کسی دیگری بده نه چون این چیزی ما نداریم در طول تاریخ حالا حخامنشیان که اشکامیان که اصلا ای دورتر شده بوده ساسانیان به دلاله خودش که اونم جای صحبت داره که حالا به تاریخ دانان بیشتر باگذار میکنم رو کردن به اینکه دین زرتوشی رو به عنوان پایگاهی برای گرداوردن ایرانیان به دورش و در واقع وحدت ایرانیان بگذارند خب اون صحبات است که به اون واقضا میکنم ولی باز میگن بانیان مفهوم دین زردشتی دعنای زردشتی از خود زمانه ایشو بودن ولی این که به صورت یک سیستم دینی که بخوایم بگیم اون هیرارکی خودش رو یا اون حرم خودش رو داشته باشه شاید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 هرا و این هیرارکی و هرم قدرت به گونه‌ای همیشه وجود داشته. و وقتی هم که یک دین به عنوان راه زندگی خودش رو در جامعه گسترش میده و گسترش داده خود به خود اون هرم خودشو پیدا می‌کنه و یک سیستم ازش ساخته میشه. این سیستم زرتشتی و دین زرتشتی رو شاید مثلا میگم زمان هخامنشی زیاد نمیشه دنبالش کرد و کمتر توی دوره اشکان. ولی بیشتر در علاقه دور ساسانی بسیار الان ساعت نه یک ساعت گذشته اگر از مینار گرامی تشخیص میدن که ما ادامه بدیم من بکنه پرسش دیگه است میتونم که به اونا بپردازم بسیار خوب یک آهنگ دیگر بگذارید و من یه چند تا پرشش دیگه است که پرشش های عمومی است میتونم به دامه بدان. دیم بفهمی خواهش میکنم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 که یک و و سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت و نه تا است از این نه تا سه تاش میتونم میگم فارسیه <تصفيق> بقیهش نیست. خب یعنی ایشون اگه درست فهمیده باشه میخوام بگم که هم دین و هم علم یا دانش از حقیقت و واقعیت چیزها و روابط ضروری و ناگزیری که میان اینها هست سرچشمه میگیره یا منبعث میشه اگه درست فهمیده باشم خب اگر از دیدگاه ما نگاه کنیم بله چون این هست یعنی دین همجوری گفتم برای ما دانش است و دانش هم که دانش است ما میگوییم دانش بیرون و دانش درون و اینها از واقعیت ها میان حالا اینکه واقعیت اشیا رو ما از با دیدن یک چیز و یک شی که روبرون هست بتونیم به حقیقتش پی ببریم حالا چیز ها و ها حالا شاید درست نبود و درست است یعنی یک چیز و عنوان یک جسم اینه که این جسم به راستی فقط همینه که ما ظاهرشون نبینیم درونش چیست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 خب یه هم چیشیدهایی باددیر زدداشته به جامل زیادتاشو نمیخوره. سازگار نیست. حالا هر اسمی هم میخواد داشته باشه. خب بر ادیان ابراهیمی هم چیزهایی دارن درونشون بستگی باز به تفسیر و احتمالا بزارش های گنارگون داره. ولی خب خیلی چیز هست که میشه گفت ناسازگارن هم. و این ناسازگاری ها رو شاید ما درست نمیفهمیم ولی در حال هر آنچه که به سوی در راه راستی باشه و بسیار را را راستی و درستی بره اونها با جهانبینی زرتشی سازگار هست و حد چی که نباشه سازگاریست پروسه بعدی هست که از دیدش و هدف از خلقت انسان چیست همکاری به هماهنگی انسان با اون آفریننده و آفرینش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 اینو به سادگی میشه چنین گفت اجازه بدید که ببینم بسیار خوب این واب پس این پرسشی ای بود که تا کنون به دست من رسید و خب صده آران هست چون آخرین بار بیست و دوزدگیت پس اپنه هست بسیار خوب من یک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 دیدگاه هایی که از دید سیستماتیک فرق دادن با طرز فکر ما میگن که آقای خوبوت رو شما متلق هست یا نسبی تو تا پاسخ داره از اشا صحبت کریم. وقتی که در واقع میتونیم میگیم اشا متلقه یعنی هنگامی که ما تونستیم رو به درستی و تا جزئیاتش و تا تشت بشناسیم و در واقع قانونمندی رو بشناسیم خب قانونمندی قانونمندی اگه بخوایم بگیم اون مطلقه خب بتونیم بگیم دروق نگفتیم اما پیش که به اونجا برسیم و در دنیای ما انسانها همه چیز نسلیست حیرتون باشه گفتم که ما اشعار و هیشتها داریم نگفتم اینجا این هم یه پرسش بود که اینو اگر نگفتم بگم. بله چون عشاوه یا بهترین عشایی که همون اردی به خودمون باشه خب باید میپرسن که خب اگر عشا یک چیزه دیگه عشاوه چیه یا بهترین عشایی پس چه معلی داشته باشه؟ شاید یه تعریف خوبی بشه دلیل زمینه کرد اینه که به همین پرسش که الان بود پیوندش می‌میره از اونجا که همین نسبیه در زندگی ما انسان‌ها وقتی که ما گزینش‌های گوناگون جلو رومون داشته باشیم می‌خوام می‌این انتخاب بکنیم بین چیزهای مختلف یه گفتم همیشه هم جلوی ما راههای گوناگون است باید انتخاب کنیم و هرچی دانشمون بیشتر خردمون بهتر کار می‌کنه برای, پل... برای گزینش درسته. خیلی وقتا ممکنه راههایی که پیش با اون هست، راههاش هم خوب باشه یعنی دلیل نمیشه راه بد باشه ولی به هر حال یکی از اینا هست که نشون میده که بهتره نتیجه ای که از اون گرفته میشه حالا در کوتاه مدت یا بیشتر در دراز مدت نشون میده که انتخاب بهتری است و اخر بعضی وقتا میشه نه انتخاب کردیم و راهش هم رفته میگیریم نه اون نتیجه ای ازش نینرفتیم یا به اون اگر رای دیگری رو میرفتیم بهتر این رو میتونیم که در این بین این اشاها اشاهای بهتری هم وجود داره که شاید یکی از اینها هم بهترین باشه برای اونجا در زندگی ما میشه اشاها و هیشگاه رو به این معنی نسبیت بیشتر تعریف کرد اما میتونیم اینجوری بگیم در, در همین دنیا نسبی ما یک چیزهایی هستن که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 ویروس، باکتری، میکرو. که اینها هم حال جزء همین هستند هستی هستند و در چرخه همین هستی هستند و خیلی وقتا کاری به ما ندارن میدونیم دیگه در بدن همه ما هزارها باکتری و میکرو و اینا هستن که اندازه های خودشون رو دارن و خیلی هم برای ما خوب باکتری‌های باکتری های مفید که به سبت ساز بدن ما کمک میکنن انرژی میدن و و و. خب اما بعضی وقتا به دلال کوناگون اینا زیان بار میشن خب ما مجبوریم چیکار کنیم جلوی در واقع زیان اینها رو بگیریم و حتی در قیلی خیلی مواقع شاید مجبور نباشیم ما جان چیزی رو بگیریم تا بخوایم که اثر بدش رو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 چشم باز کرد و بتونه به راه درست برگرده به راه سازندگی برگرده برابراین برای ما مقدم از به این بردن دروغ کار نیست بلکه مقدم از به این بردن دروغ است از راه درست و راست و اشال تا اونجا که میشه ولی، جواب به حال این سوال این بود که خوب و برد انظار ما مصلق می سن. یکی از جاهایی که من باید بهش اشاره کنم برای اون کسایی که بیشتر شاید خواندن رو کردن ببینید یکی از سرچشمه های مسئله خوب و بدی اگه ما از نظر تاریخی یعنی کهن بودنش هم نگاه کنیم برد میگره به گاتاهای هرشو که در واقع در میشه گفت در یسنای سی و از اونجا که ایشون میشه گفتش که آموزشاشون به گونه‌ای آغاز میشه یکی از اولین بندها صحبت از همین میکنه صحبت از این دو نیروی که در اندیشه انسان به صورت دو به صورت دو مینون گفتم از منم یاد منم از اندیشه میاد به دو شیوه اندیشه هستند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 به قول مرور سپنتامینو باید پیروز بشه هم میخوام که یه خود زاویه دیدمونو یه خود یه, یه جور دیگه هم نگاه کنیم به این مساله. ببینید ما دو نیروی همزاد و همیستار یا همزاد و رو در در هستی داریم یعنی در واقع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 یک دانه جلید رو میافایند از این برخورد این دوست که یک سلور جدید به وجود میاد یک کستی جلید به وجود میاد و به این ترتیب پیش میره این دو بد و خوب نیستند این دو در واقع مکمل تمام کننده هم دیگر هستند حق کدوم به یه شیوه کار میکنند یکی به شیوه کشش به شیوه رانش حالی اینجوری بگیم خب من میخوام بگم که مطلق گرایی نکنیم با همه بعضی وقتهای که آدم وقتی بدی رو می‌بینه دیگه نمی‌دونه چیکارش کارش این بدی باید از بین بره تا خوبی بتونه پیروز بشه ولی از اونجا که مطلق نیست باید اینجوری هم نگاه کنیم اون بدی وقتی بد میشه که انداز از اندازه بره بیرون ببینید انگره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 یکیشون آرومه و خردمند است و همیشه میشینه و نگاه میکنه اون یکی, یکی شلوغ کنچکابه میخواد ببینه که پشت هر دلیل چه خبره این در رو باز میکنه اون در باز میکنه و اون یکی هم میشینه نگاه میکنه من و هر دو از این نتیجه سود بیبرم ولی که وقتا شیطنت میزنه بیرون زیادی میشه ازم لازه میره بیرون اونجاست که نظم به هم میخوره اونجاست که عشا به هم میخوره و اونجاست که دروغ در واقع تولید میشه و بیرانگری تولید میشه پس هدف اول در از بین بردن نیست از بین بردن اون متضاد بلکه با کمک هم دیگه پیش بردن هست ببین در اینجا که ما زنگی می‌کنیم در تمام آموزش هایی که ما در حالا آموزش های یا کلاس و مدرسه و غیره همیشه اینو یاد میدن این هست که یک گروه علاوه کار گروهی است و در یک گروه اگه همه یک جوش فکر کنن هیچ وقت پیشرفت وجود نداره بنابراین در زندگی اجتماعی ما انسان ها خیلی مهم هست که ما بتونیم خلاقیت گروهی رو وقتی به کار میبریم در این گروه بدونیم چگونه از گوناگونی افکار بتونیم استفاده کنیم برای پیشرفت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 چند کشور که یک دو تا ذره رو به هم بزنند و این ذره ها بشکنند و ما بتونیم که بریم بیشتر در دل این ذره ها ببینیم که اون میتونیم بهراخره به پای تشت برسیم ببینیم که چیه که این هستی رو میسازیم خب یعنی اونجا که ما مظهورم این بود که نمیبینیم اگه اسمش رو به جهان قیبیشون بذارن این که در این جهان نادیدنی یا در این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 به گونه دیگری از در شکل دیگری از همین جهان جهان نادیدنی یا بهتر بگیم که اگر بخوابیم دانشی همینجور نگاش کنیم اینه که انرژی ها و تا که باز میگم دانش ما اجازه میده انرژی ها پایان نمی انرژی ها از شکلی به شکل دیگر دیگر گون میشند و ما هم چیزی نیستیم جز یک انرژی توده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 در اون که بعد بیشتر بهش خواهیم رسید که ما انسان رو چگونه نگاه میکنیم حال اون بخش فیزیکی و تنیه ما وقتی که این جان از دن به در میشه خب اونا برمیگرده به آخشیشا یعنی همونها هم باز به طبیعت برمیگردن و همونها هم در دل این طبیعت و اشکال دیگری به خودشون میگیرند بنابراین اینها ما روان هستیم ما جاری هستیم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 بنابراین. من این را میخوام به خود برگردم به اون داستان خلقت و اینا. هیچ چیزی از نیستی نمیتونه به هستی حالا اینا دیگه اگه برگردیم هی بخوایم بریم به عقب و به اون به قوله من آغاز جهان برسیم و که آیا در ابر نیستی بوده و چی هستی شده. اینها میتونم بگم دستگرم اونجا دیگه من پاسخی برش ندارم. اونجا دیگه یه چیز باوری است ولی آن چیزی که چشم درون و برون ما تا به امروز و خیرد ما به نشون میده اینه که هستی از شکلی به شکلی دیگر به گرگون میشه خب دوستان دیگر زمان به پایان رسیده یک ساعت و نیم با شما بودیم با هم بودیم سپاسگزارم کزارم از این که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 در کنار هم باشید شب خوش خداوند نگهدار به درود تا درود دیگر